یا داشته یکی مانده به آخری که نورا پیش از گیروفتادن میان مرگ و زندگی نوشته بود. تا حالا شده با خودتون فکر کنین. چی شد که کارم به اینجا رسید؟ انگار که توی یه هزار تو گم شده باشین و همش تقصیر خودتون باشه چون تک تک مسیرهای اشتباهی رو که رفتین خودتون انتخاب کردین. میدونین که راه زیادی وجود داشته که میتونست نجاتتون بده. چون میتونین صدای آدم هایی رو بیرون از هزار تو بشنوین که موفق شدن ازش خارج بشن و حالا دارن با هم میگن و میخندن بعضی وقتها هم از بین پرچین ها یک نظر اونها رو میبینین مثل حیبتی مات بین برگ ها به نظر میاد خیلی خوشحالن که تونستن موفق بشن البته شما هم ازشون متنفر نیستین بلکه بیشتر از خودتون متنفرین که توانایی های اونها رو نداشتین و نتونستین همه مشکلات رو حل کنین آره تا حالا چنین فکری کردین؟ یا این هزار تو فقط برای منه؟ پانوشت گربه مرد صفحه شترنج طبقات پر از کتاب که خانه نیمه شب دوباره کاملا بی حرکت شده بودند. انگار که حرکت کردنشان هرگز امری ممکن نبوده. نورا می می‌کرد حالا در بخش دیگری از کتاب اند. البته نمی‌شد گفت در اتاقی دیگر. چون ظاهرا تمام کتابخانه فقط یک اتاق بینهایت وسیع بود و از آنجا که همه کتابها هنوز هم سبز بودند به سختی میشد با اطمینان گفت که در بخش دیگری از کتابخانه بودند یا نه اما به نظرش می رسید که نسبت به دفعه قبل در فاصله نزدیکتری از یک راهرو قرار دارد و از اینجا میتواند از فاصله میان یکی از طبقات چیزی جدید را ببیند یک میز اداری با کامپیوتری که رویش بود مثل دفتر کاری موقت و بدون دیوار که در راه روی میان ردیف قفصه ها گذاشته شده باشد خانم علم نه پشت میز اداری بلکه روی زمین جلوی نورا پشت میز چوبی کوچکی نشسته بود و شطرنج بازی میکرد. نورا گفت با اون چیزی که تصور میکردم فرق داشت به نظر میآمد خانم علم وسط بازی باشد همانطور که با چهره بیخیال به روبرو رو خیره شده بود، مهره فیل سیاه را حرکت داد تا سرباز سفید را بزند و پرسید حد زدنش سخته نه؟ اینکه که چی میتونه خوشحالمون کنه؟ خانم علم صفیه شطرنج را 180 درجه چرخاند، به ظاهر داشت با خودش بازی میگرد. نورا گفت، آره سخته، اما حالی که من اومدم اینجا چه اتفاقی واسه اون میفته؟ منظورم واسه خودمه چه بلایی سرم میاد؟ من از کجا بدونم؟ من فقط امروز رو میشناسم خیلی چیزها درباره یه امروز میدونم اما نمیدونم فردا چی میشه؟ اما اینطوری یه دفعه توی توالت به خودش میاد و نمیدونی چطوری رسیده اونجا؟ خودت تا حالا نشده وارد یه اتاق بشی و ندونی واسه چی رفتی اونجا؟ هیچ وقت یه لحظه همه چیز یادت نرفته یا فراموش نکردی که الان داشتی چیکار میکردی؟ چرا؟ اما من الان نیم ساعت توی اون زندگی بودم اون نسخه از تو هیچ وقت متوجه این حقیقت نمیشه یادش چه کارهایی کردی و چه حرفهایی زدی اما به این عنوان که اون کارها رو خودش کرده و اون حرفها رو خودش زده لورا نفس عمیقی بیرون داد دن قبلا اینطوری نبود خانم علم که هنوز به صفحه شدرنج خیره شده بود گفت اجماع عوض میشن. دستش اسپویل فیلم در هوا معلق مانده بود. نورا دوباره در فکر رفت. یا شاید هم همین طوری بوده و فقط من متوجهش نبودم. خانم علم به نورا نگاه کرد و گفت: خوب چه حسی داری؟ حس اینکه میخوام بمیرم. خیلی وقتی که میخواستم بمیرم. به دقت حساب کتاب کردم و فهمیدم زنده بودنم به عنوان یه آدم بیفایده و به هیچ جا نرسیده. دردناکتر از چیزیه که هر کسی از مردنم حس میکنه در واقع مطمئنم که با مردنم خیال همه راحت میشه به درد هیچ کس نمیخورم توی کارم هم مهارتی نداشتم همه رو نامید کردم حقیقت اینه که زنده موندنم فقط اکسیژن هدر دادنه همه رو آزار میدم هیچ رو ندارم ولس بیچاره هم به خاطر این کشته شد که حتی نمیتونستم از یک گربه درست مراقبت کنم. میخوام بمیرم. زندگیم فاجعه است و میخوام تموم بشه. من به درد زندگی کردن نمیخورم ادامه این وزم هیچ فایده ای نداره. چون مشخصا سرنوشتم اینه که توی زندگی‌های دیگه هم زجر بکشم و ناراحت باشم. من همینم که هستم، هیچی به دنیا اضافه نمیکنم فقط دارم توی دلسوزی واسه خودم غرق میشم میخوام بمیرم. خانم علم بنوراهیر شد. انگار که داشت دوباره پاراگرافی رو از کتابی می‌خوند که قبلا مطالعهش کرده بود، اما حالا متوجه شده که معنایی جدید در خود دارد. با لحنی شمرده و متین به نورا گفت، خواستن کلمه جالبیه، کمبود رو نشون میده. گاهی اگه یه کمبود رو با چیز دیگه ای پر کنیم، اون میل و خواستنمون هم به کل از بین میره. شاید هم تو مشکلت یک کم بود باشه. نه اینکه صرفاً چیزی رو بخوای. شاید یه زندگی باشه که تو واقعا دوست داشته باشی تجربهش کنی. فکر میکردم همین زندگی بوده. زندگی با دن. اما نبود. نه نبود. اما اون فقط یکی از زندگی های ممکن برای توه. یک تقسیم بر نهایت حقیقتاً عدد خیلی کوچکیه همه زندگی‌های ممکن در هر صورت منو توی خودشون دارن. بنابراین این واقعا هم نمیشه گفت همه زندگی‌های ممکن. خانم علم به حرف او گوش نمیداد. خب، بگو ببینم، حالا میخوایی کجا بری؟ هیچ جا لطفاً. میخوای یه نگاه دیگه به کتاب حسرت بندازی؟ نورا بینیش را کوچک کرد و خیلی آهسته سرش را تکان داد. یاد احساس خفقانی افتاد که از وزن آن همه حسرت به او دست داده بود. نه. گربه چطور؟ گفتی اسمش چی بود؟ ولتر اسم تصنعی و پرتکلوفیه. گربه بیچارم خیلی متوازه بود. واسه همین فقط وولت صداش میکردم. بعضی وقتها اگه شاد و شنگول بودم بهش می گفتم وولتسی که البته مشخصا کم پیش میومد. حتی نتونستم اسم یک گربه رو با اسمینان انتخاب کنم. خب، گفتی خوب از گربت مراقبت نکردی. دوست داشتی چه کاری رو متفاوت انجام میدادی؟ نورا به فکر فرو رفت. کاملا حس میکرد که خانم علم دارد او را به بازی میگیرد. با این حال همچنان دوست داشت دوباره گربهش را ببیند. اما نه فقط گربهی دیگر که همان اسم ولتر را دارد. در واقع بیشتر از هر چیز دلش میخواست گربه را ببیند. خیلی خوب. دوست دارم زندگی رو ببینم که توش نزاشتم ولتر از خونه بره بیرون. ولتر خودم. میخوام زندگی رو ببینم که توش سعی نکردم خودم را بکشم و خوب از گربم مراقبت کردم و دیشب نزاشتم بره توی خیابون. حتی اگه شده فقط واسه یه مدت کوتاه. دوست دارم اون زندگی رو ببینم. وجود داره. مگه نه؟ تنها راه یاد گرفتن زندگی کردن است. نورا اطراف را نگاه کرد و دید روی تخت خودش دراز کشیده. نگاهی به ساعتش انداخت. یک دقیقه از نیمه شب گذشته بود. چراغ را روشن کرد. دقیقا همان زندگی خودش بود. اما این بار بهتر میشد، چون توی این زندگی ولتر زنده بود. ولتر واقعی خودش. اما کجا بود؟ وورلدز از روی تخت بلند شد ولتس. سرتاسر خانهاش را گشت اما پیدایش نکرد باران به پنجره ها میزد این چیزها تغییری نکرده بود قوطی جدید قرص های ضددعفاف سردگیش روی کابینت آشپزخانه بود پیانوی الکتریکش هم بی صدا کلار دیوار قرار داشت ولتسی. گل یک زنگوله ای و از سه کاکتوس کوچکش توی گلدان بودند. کتابخانه هم دقیقا همان ترکیب کتاب کتابهای فلسفی و رمان و راهنماهای بازنشده ی یوگا و بیوگرافی ستارگان راک و کتابهای پرسش علمی را داشت مجله نشنال جئوگرافیکی که روی جلدش تصویر کوسه داشت و نسخه پنج ماه پیش مجله ال که نورا در اصل فقط خریده بودش تا مصاحبه رایان بیلی را در آن بخواند مدت ها بود که کتاب جدیدی به کتابخانه اضافه نشده بود کاسه ولتر هنوز از غذای گربه پر بود همه جا را دنبال او گشت و اسمش را صدا کرد اما سرانجام وقتی دوباره به اتاق خوابش برگشت و زیر تخت را نگاه کرد او را دید ولز گربه تکان نخورد از آنجا که دستهایش برای رسیدن به ولتر به اندازه کافی بلند نبودند تخت را جابجا جا کرد اجوا کرد ولسی دیگه ولسی. اما به بحث آنکه دستش به بدن سرد گر بخورد متوجه حقیقت شد و لحظه ای بعد غم و سردرگمی به ذهنش هجوم آورد. بیدرنگ به کتابخانه برگشت و خانم علم را دید که این بار روی صندلی راحتی نشسته بود و به دقت یکی از کتاب را میخاند. نورا به او گفت نمیفهمم چی شد؟ خانم علم همانطور به صفحه خیره شد که داشت میخاندش. علاره چیزهای زیادی وجود داشته باشن نمیفهمیشون. گفتم میخوام زندگی رو ببینم که ولتر هنوز توش زنده است البته چنین حرفی نزدی چی؟ خانم علم کتابش رو پایین گذاشت گفتی میخوای زندگی رو ببینی که نزاشتی ولتر از خونه بره بیرون این دوتا کاملا با هم فرق دارم واقعا؟ آره کاملا چون میدونی اگر خواسته بودی زندگی رو ببینی که ولتر هنوز توش زنده است باید بهت جواب رد میدادم اما چرا؟ چون این زندگی وجود نداره. اگه نگفتین هر زندگی که بخوام وجود داره؟ هر زندگی ممکنی. اینطور که مشخص شد، ولتر بیماری وخیمی می داشته به اسم... به دقت اسم بیماری رو از توی کتاب خواند. کاردیو و پاتی محدود کننده بسیار شدید. از لحظه تولد این بیماری رو داشته و سرنوشتش این بوده که توی همون سن کم قلبش مشکل پیدا کنه و تلف بشه. اما ماشین بهش زد. بین مردن توی جاده و اینکه ماشین بهت بزنه فرخ هست نورا. توی زندگی اصلی تو ولتر از اکثر زندگی های دیگش بیشتر عمر کرده. جز همین زندگی که الان دیدی و ولتر توش سه ساعت پیش تلف شد با اینکه سالهای اول عمرش سخت بودن همون یک سالی که پیش تو زندگی میکرد بهترین سال عمرش بود باور کن که ولتر میتونست زندگی های خیلی بدتری هم داشته باشه همین چند لحظه پیش حتی اسمش رو هم نمی دونستی. حالا میدونین که بیماری کاری و نمیدونم چی داشته اسمش رو میدونستم چند لحظه پیش هم نبود همین لحظه بود، ساعتت رو نگاه کن، چرا دروغ گفتین؟ دروغ نگفتم، ازت پرسیدم اسم گربت چی بود، هیچ وقت نگفتم خودم نمیدونم اسمش چی بوده، فرقش رو میفهمی؟ فقط میخواستم خودت اسمش رو بگی تا چیزی رو حس کنی حالا دیگر اصاب نورا به هم ریخته بود. این که بدتره. با اینکه که می این توی این زندگی مرده منو فرستادین داخلش. واقعا مرده بود. مانو بر چی عوض نشد؟ چشمان خانم علم دوباره برق زدند. جز تو؟ منظورتون چیه؟ خب، الان دیگه فکر نمی کنی درست از گربت مراقبت نکردی. به بهترین شکلی که میشد مراقب ولتر بودی. تو ازش مراقبت کردی اون هم به همون ای دوستت داشت که تو دوستش داشتی. شاید هم نمیخواست مردنش رو ببینی. چون گربه ها میفهمن. وقتی پایان عمرشون نزدیک بشه خیلی خوب این رو میدونن. رفت بیرون چون قرار بود بمیره خودش هم خبر داشت. نورا سعی کرد این اطلاعات جدید را پردازش کند. حالا که بیشتر فکرش را میکرد، روی جسد گربهش هیچ اثری از آسیب خارجی ندیده بود. فقط همان حرف اش را قبول کرده بود فکر می کرد هر گربه ای که توی جاده مرده باشد حتما با تصادف مرده اگر جراحی با آن سطح علمی چنین فکری می کرد دیگر از آدمی ساده و تحصیل نکرده چه انتظاری می رفته. دو دوتا می شود تصادف ماشین؟ نورا قم زده زیر لب زمزمه کرد ولز بیچاره ولسه بیچاره خانم علم مثل معلمی که می دید درسی را یاد گرفته لبخند زد. اون دوست داشت نورا، بهتر از هر کسی ازش مراقبت می کردی. برو آخرین صفحه کتاب حسرت ها رو نگاه کن. نورا کتاب را روی زمین می دید. کنارش زانو زد. نمی خوام دوباره نگاهش کنم. نگران نباش، این بار امتره. فقط همون صفحه آخر رو باز کن. وقتی آخرین صفحه را باز کرد، یکی از آخرین حسرت هایش را دید که داشت، آهسته آهسته از صفحه ناپدید میشد حروف عبارت خوب از ولتر مراقبت نکردم یکی یکی از روی صفحه پاک شدند مثل غریبه هایی که در مه ناپدید میشوند. نورا پیش از آن اتفاق بدی بیفتد کتاب را بست دیدی گاهی حسرت هامون هیچ ریشههای در واقعیت ندارند. بعضی وقتها حسرت ها، دنبال واجه مناسبی برای آن گشت و پیدایش کرد. یه مشت حرف نورا سعی کرد به دوران مدرسش فکر کند و یادش بیاید که خانم علم هیچ وقت از کلمه مثل حرف مفت استفاده کرده یا نه. تقریبا هم مطمئن بود که هرگز چنین کلمه از او نشنیده. اما هنوز نمیفهمم اگه میدونستین ولس مرده واسه چی گذاشتین من برم توی اون زندگی میتونستین به هم بگین فقط میتونستین به هم بگین که صاحب بدی برای گربم نبودم چرا نگفتین چون گاهی تنها راه یاد گرفتن زندگی کردن نورا سخت به نظر میاد خانم علم به او گفت بیا بشین بیا بشین منظورم نشستن درست حسابیه درست نیست اینطوری روی زمین زانو زدی. نورا چرخید و صندلی را پشت سرش دید که پیش از این ندیده بود. صندلی ای با چوب ماهونی و چرم دار و یک رهل برنجی کتاب که به یک دستش متصل بود. احتمالا متعلق به دوری ادواردیان بود. یه لحظه استراحت کن. نورا نشست. به ساعتش خیره شد. هر لحظه هم که استراحت میگرد زمان هنوز روی نیمه شب مانده بود و تغییر نمیکرد هنوز هم از این ووضع رای نیستم یه زندگی پر از غم کافی بود چه فایده داری که یه زندگی غمگین دیگر رو هم ببینم؟ خیلی خوب خانم علم شانه بالا انداخت چی؟ بیا دیگه هیچ کاری نکنی. میتونی همینطوری توی کتاب خونه بمونی و زندگی های توی قفسه رو ببینی و هیچ کدوم رو انتخاب نکنی؟ نورا حس می کرد که خانم علم دارد به طریقی به بازیش می اما با او همراهی کرد خیلی خوب بنابراین نورا همانطور ایستاد و خانم علم دوباره کتابش را برداشت تا بخواندش. به نظر نورا عادلانه نبود که خانم علم می توانست همه زندگی ها را بخواند، اما به درونشان نرود زمان گذشت البته در واقع آشکارا زمانی نگذشته بود نورا میتوانست تا ابد همینجا بماند و نه گرسنه بشود، نه تشنه و نخسته، اما ظاهرا حوصله‌اش میتوانست سر برود. با ثابت ماندن زمان، آرام آرام کنجکاوی نورا برای زندگی‌های دور تا دورش بیشتر شد. اینطور طور که به نظر می‌رسید، غیر ممکن است که در کتابخانه‌ای بیستی و دلت نخواهد کتابها را از طبقات بیرون بکشی. نورا ناگهان گفت: خوب، چرا خودتون یه زندگی رو که میدونین خوبه به هم نمیدین روش کار این کتاب اینطوری نیست نورا سؤال دیگری داشت مطمئنا توی خیلی از زندگی ها الان خواب هستم نه؟ آره توی خیلی هاشون خوب اون وقت چی میشه؟ میخوابی بعد هم توی همون زندگی از خواب بیدار میشی چیزی نیست که نیازی به نگرانی داشته باشه اما اگه خیلی نگرانی، میتونی زندگی رو امتحان کنی که توی زمان دیگه ای هستن. منظورتون چیه؟ خوب همه جای دنیا که شب نیست، مگه نه؟ چی؟ بینهایت جهان هست که تو توشون زندگی میکنی؟ واقعا فکر میکنی همهشون به وقت گیریم ویچ هستند؟ نورا گفت، معلومه که نه. متوجه شد که نزدیک است کتا بیاید و. زندگی دیگری انتخاب کند یاد نهنگ های گوش پشت و پیام های بیپاسخ ایزی افتاد آرزو میکنم با ایزی رفته بودم استرالیا دوست دارم اون زندگی رو تجربه کنم انتخاب خیلی خوبی بود چرا؟ زندگی خیلی خوبیه؟ من که چنین حرفی نزدم فقط حس میکنم داری توی انتخاب کردن ماهرتر میشی پس زندگی بدیه؟ این حرف را هم نزدم. طبقات کتاب دوباره به حرکت درآمدند و چند ثانیگی بعد متوقف شدند. خانم علم در حالی که یک کتاب را از طبقه یکی مانده به پایین ترین برمی داشت گفت آهان، آره، این هاش. بلافاصله کتاب را شناخته بود که البته عجیب بود چون تمام کتاب ها تقریباً به طور کامل شبیه هم دیگر بودند. مهربانان کتاب را به نورا داد، گویی که حدیه تولدش باشد بفرما، خودت میدونی باید چی کار کنی نورا مکس کرد، اگه مرده باشم چی؟ ببخشید، منظورم توی زندگی دیگه هست، حتما زندگی های هم وجود دارن که توشون قبل از امروز من مردم خانم علم کنجکاف به نظر میرسی. مگه خودتم همینو نمیخواستی؟ خب چرا؟ اما قبل از امروز هم بی نهایت بار مردهی، بله پویلت‌هایی مثل تصادف ماشین، اووردوز دارو، قرق شدن، مسمومیت غذایی، مرگبار، خفه شدن با تیکه سیب، خفه شدن با بیسکویت، خفه شدن با هداگ گیاهی، خفه شدن با هداگ غیر گیاهی و هر بیماری ممکنی که میشه گرفت یا بهش مبتلا شد به هر روش ممکن و در هر زمان ممکنی قبلا مرده‌ای. پس امکان داری که یه کتاب رو باز کنم و خیلی ساده بمیرم؟ نه. دست کم نبلا فاصله درست مثل حرفی که برای ولتر زدم تنها زندگی های ممکن برای تجربه کردن خب زندگی هستند. منظورم اینه که آره میتونی توی اون زندگی هم بمیری اما غیر ممکنه که قبل از ورود به اون زندگی مرده باشی چون کتابخونه نیمه شب کتابخونه ارواح نیست کتابخونه اجساد هم نیست کتابخونه احتمالاته هم دقیقا نقطه مقابل امکان و احتمال میفهمی فکر کنم نورا به کتابی خیره شد که خانم علم دستش داده بود سبز ماشی با سطحی صاف و عنوان عریز و به طرز عصب خرد کنی بیمعنای زندگی من که رویش نوشته شده بودند کتاب را باز کرد و صفحه خالی دید برای همین به صفحه بعد رفت و همزمان به این فکر کرد که این بارچه اتفاقی میافتد. استخر از همیشه کمی شلوختر بود. پس از آن خودش آنجا بود.